بسم الله الرحمن الرحیم ما در ش... طرق شناخت خدا بودیم روش های شناخت خدا گفتیم یک راه راه ذاتی که تمام واسش گذشت یک راه هم راه آفرینش حضرت حق هست توجه کردن به نشانه ها که در بحث های کلامی بهش میگن استفاده از آیات آیات اون نشانه های واضح و آشکار بر یک حقیقت رو میگن آنگاه عرض کردیم کسی که به محضر این آثار می رود برای دلالت بر خدا گاه اینطور است که اول آثار را میبیند بیند بد صاحب اثر را گاه اینطور است که تو امان می گاه اینطور است که اثر را صاحب اثر را و بعد در زمنش در واقع اون مؤثر را و در ضمنش صاحب اثر را و گاه فقط مؤثر رو میبینه یه چیزی دیگه نیست تقریبی است که به اون آینه زدیم که اصلا خلقتی نمیبیند، مخلوقی نمیبیند. لا اله الا هو هرچی هست اوست و بیانش هم در محاوراتش بعضی از اهل معنا وقتی صحبت میکردن هر از گاهی بگفتن که توی توی یعنی که اصلا موجودیتی برای چیزی دیگری قائل نبودن یک نحوه بینش اما بحثمون رو در همین شناخت از طریق آیات ادامه میدیم به بی این معنا که این برای همه حاصل نمیشه خداوند فرموده توحید از شناخت از طریق آیات برای دو گروه. این دو گروه میتوانه از اینها بهره ببرن یک برای صاحبان خرد عقل سوره مبارکه آل امران صد نوت این نفی خلق سماوات و بر در خلق کردن آسمان ها و زمین و اختلاف لعید و نهار آمد و شده روز و شب لا آیات نشانه است مدونه بر همه لأولل انبر ال... بر صاحبان خرد بر عقل بر کسانی که عقل دارن این یک دو برای صاحبان یقین صاحبان یقین سوره مبارکه جاسی آیه چهار و فی خلقکم در خلق کردن شما یا در مخلوق بودن شما و ما یبص من دابتن و جنبندگان که در سراسر زمین پراکنده ساخته حضرت حق آیاتون نشانه است امولی قاومن یو قانون برای اهل یقین شناخته از آثار برای همه حاصل نمیشه باید خرد داشته باشی یک باید اهل یقین باشی دو اگه این دو تا نباشه میبینی ولی اون چی که بایستی رو برداشت نمیکنه این شو چند تا گروه و گرورو برای کسانی که صاحبان اندیشه هستند یه موقع از شما منبع اندیشه رو دارید به عنوان عقل یه موقع است که شما از این عقل استفاده میکنید یعنی یک تزی داری تو زندگی مرا داره تو زندگی اینجوریست که همج و باشه در زندگی مهم صبات در زندگیه به واسطه تغییر شرایط انسان نباید تغییر پیدا بکنه اگر به واسطه تغییر شرایط انسان تغییر منفی پیدا کرد این یعنی اینکه از عقلش استفاده نکرد چون عقل انسان رو بهینده میکنه برای جلو اگه قهقرائی و قصی حرکت کرد یعنی که صاحباندیشه نیست تز تو زندگیش نداره برنامه تو زندگیش نداره بنابراین برای صاحبان اندیشه کسانو که فکر میکنن یه مبنایی دارن یه جهانبینی دارن جهانبینی عرفانی داره جهانبینی علمی داره جهانبینی فلسفی داره جهانبینی دینی داره یه جهانبینی داره یه, جهانبینی داره، یه تفکری داره یه مکتبی رو داره یه چیزی رو قبول داره در سوره مبارکه روم آیه 21 و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم از و از نشانه های خدا این است که از جنس شما زوجهای را آفرید لتسکنوا قنو علیها تا در کنار اونها به سکینه برسید سکینه یعنی آرامش و جعل علوه اینکن مودتا و بین شما مودت قرار داد و رحمت این همون چیز است که تو زندگی ها نیست خدا قرار داده به عنوانی که باید باشه ما راجبه باید بودن صحبت بکنم اون که هست اون که هست خلاف اینه نه سکینه هست نه مودتی هست نه رحمتی هست ولی باید یه همچین چیزی باشه یعنی باید یک انتخابی در ازدواج باشد که انسان ها به این سو کشیده بشن حالا کشیده نمیشن و اصلش غلط یعنی اصل ازدواج غلط نیست اصل انتخاب غلطه و رحمتا خب این نفیزاله که لعایات در این نشانه است اما لقومنی نتفکرون برای صاحبان اندیشه کسانی که فکر بکنن کسانی که مکتب دارن خب که در مباحث شهوانی فاقد مکتب هستند میگن هر جوری انسان میتواند خود را ارضا کند ارضا بکنه خب این به ازدواش فکر نمی کنه نهاید به ازدواش سفید فکر میکنه این اندیشه نداره اقلره داره حاولی اندیشه نداره یعنی آکیبن گذشتی کلام گروه سوم شدن کیا؟ بله کسانی <متحد> که صاحب اندیشنی فکری داره، این, من... این اندیشی دارن او وقت اندیشه با توهمات فرق میکنه. اینا توی بحثای شناخت خیلی کمک میکنه، و خب دیگه آلا ما نمیدیم سراغش. گروه چهارانی که از آیات الهی استفاده میکنن دانشمندان هستن. دانشمندان. این آیات برای دانشمندان در واقع استفاده داره دست صوره مبارکه روم آیه 22 و من آیات ای خلق و سماواد و از دشانه های حضرت حق خلق کردن آسمان های هفغانو به زمین است و اختلاف و علسنت کن اختلاف هایتون و الان کن رنگهایتون ان نفیزال که خب خیلی عجیبه من از این دیدگاه بخوام شما رو متوجه مطلب بکنم که یک ژن چقدر قابلیت تعدد داره اینا همه ژن آدم و حواست اینا همه یه مرده ولی یکی سیاه در میاد، یکی بلوری در میاد، یکی زرد در میاد، یکی چشابی در میاد. اینا فکر کنه اینا یه چه در اومده چه قلبه ایه قدرتیه یکی کوتاه در میاد یکی بلند در میاد ولی بعد این نفیزاله که لعایات مطلل عالمین دانشمندان سوال، حتی خودم جوابشو میدن نگه من یعنی به حیث و که باید جواب منو بدین سآل با اون اینکه؟ فرق دانشی که برای علم به دست میاد با دانشی که برای عقل به دست میاد چیه هم عقل مدرکه و هم علم مدرکه دانشته ما یک از دانشمون داریم دانش علمی جامبینی علمی یک جوانبینی هم داره جوانبینی عقلی غیره مدرکاتشون چه فرقی با هم میکنه فرقشون ماحصلش در اینه مدرکاتی که به واسطه عقل درک میشود میز شما تمایز شماست با انسانهایی که عقل ندارند مجانین و مدرکاتی که به علم برای شما روشن میشود مگز شماست و تمایز شماست با جاهلان جاهل عقل دارد ولی علم ندارد علم در او یک دانشی رو ایجاد میکنه اونایی که در دار المجانین هستن بنده خدا اصلا عقل ندارن تا به اون مدرکات بخوام برسند پس بنابراین بین عقل و علم چیه؟ از نظر نوع مدرکم هم چی با هم تفاوت دارن نوع مدرکاتم هم با هم تفاوت دارن حالا چه برسه از شیوهش شیوه اون تاقلی شیوه این تجربیه و پنجمین گروهی که این آیات براشون سودمند هست و اونها رو به شناخت میرسانه کسانی هستند که جستجوگرند طالبند، طالب مطلبه در سوره مبارکه روم آیه 23 ومن آیاتهی منا منامکن به لیل و نهار و از آیات الهی و نشانه های او خواب شما در شب و روز است. درست هم گفتم ما شب و روز خوابیم شبش رو رسما روزش رو به طور غیر رسمی یعنی قرآن که غلط نمیگه و به تقاغ من فضله و بهرهگیری از فضل پروردگار است این نفیزالک لعایات لقوم یسمعون برای کسانی که جستجو میکنن شنوا هست دستشون تو گوششون نیست اینا طالب مطلبه حالا اگه خیلی ارز به‌حضورتون که مطلب حاصل نکند ل قوم یسمعون مثلا شما هستید چون طالبید دیگه حالا مثلا اینکه نه حالا واقعا هستید اینکه چیزی حاصل نکنه یعنی که حالا به غرور دچار نشی حالا بگی آقا ما ل قوم یسمعون هستیم شما میاد چون نمی اسماتم از بین میره خود شما هجاستجور گر هستید یعنی یاد میگیرید ان خب برابر این پنج گروه این آیات برای شما استفاده داره اما اینکه ما در کجا این پنج گروه باشین عادیه دانشمندان و صاحبان اندیشه و ارز vazur تو که طالبان و جستجور گران صاحبان خرد و اهل یقین این پنج گروه خب مرخص یعنی از این هم کسی استفاده توحید نمیکنه خیلی سخته که من صاحب خرد باشم خیلی سخته که من جستجوگر باشم و اهل انصاف باشم حالا یه بحثی رو مطرح میکنین گرچه بحث کلامی نیست اما کمک میکنه در شناخت خدا و همه الفاظ ای همینه این باید حاصل بشه هرچند در شناخت این بحث مقدمه است ولی اصل مطلب اینه این باید اتفاق بیفته تو من خدا رو بشناسم اگر از آیات بخوام بشناسم باید از این راه برم اواملی رو برای معرفت خدا بیان می کنیم بس کلامی هست کردم نیست ولی کمک می شما چون ما معرفت به خدا پیدا بکنیم و معرفت خدا یکیش از راه آیاته خب برای که ما از این آیات بتوانیم استفاده بکنیم باید این عوامل رو در خودمون ایجاد بکنیم یک و یه موانعی رو از خودمون دور بکنیم دو بیان این عوامل و بیان اون موانه بحثی کلامی نیست اما به نظر من در اصل مطلب قوی تره یعنی لازم تره این اصلا باید گفته بشید چرا بحثا شما در احماق وجودتون بگید آخ ما که خدا را قبول داریم چرا به اون باوره نمی رسیم خب چرا به اون باوره نمی رسیده تا حالا ما نخواستیم باور شما قبول برای شما ایجاد قبول و قلوم. من روز اول گفتم من اصلا دایه ندارم که مثلا این بحث منجر به ایمان به خدا میشه نه من روز اول هم همین رو گفتم که این بحثا خدا را به شما آنچنان که میتوانیم و درست کردیم میشناسیم خدا اینی که داریم میگیم نه اون چیزی که فکر بیکردیم حالا خدا رو قبول داریم همه من قبول داریم اما چی این معنای صحیح شما داریم میگیم به اندازه توان اونم داریم میگین اما این که ایمانشو قبلا حتما داشتید باورشو قطعا داشتید معنی بخوایم اینجا ده باور بکنیم اصلا ادعامونم میگیم اما راهش اینه یک ذکر الله ذکر خدا از عواملی است که شما را به معرفت خدا می بنابراین اینکه با تسبیح میگی، اگه به معرفت خدا شما را نکشاند، ذکر این, این مفهومش از بی وره. روایاتش گوش میکنید. حدیث قدسی در کتاب شریف عدت الدایی. حضرت عقل میفرما: ایما عبد ان طلعت سو علی هر بنده ای رو که من من خدا اطلاع پیدا کنم از درونش فرعی القال و علی التمسک به ذکری ببینم که این در زندگیش بیشتر اشتغال به من داره تملی تو سیاسته من به دست میگیرم سر امور زندگیشو خدا ببینه که من در درونم به او اشتغال دارم. بعد سر رشته زندگی میره دست کی؟ وقت میشه رشته ای برگردنم افکنده دوست، نکشد هر جا که خاطر خواه اوست. ولی این زمان اونمندزه که اشتغال قلبی یه نگاه میکنم، ببینم که کجایی و کنتو جلیسه من هم نشینش بیشم و مهادسه و انیسه هم سخنش میشم مونسش میشم و چه شناختی بالاتر از این این شناخ شناخت شناخت وجدانیه شناخت علمی استدلال نی. خدا رو در خودش می یابه. و چه شناختی که فقط با ذکر خدا حاصل میشه. بنابراین برادرها و خواهران محترم توجه به این معنا دارن ذکر یک مقوله بسیار بالاست. چه بسا من یک زمانی مجبور بشم برخی از مقولات رو توضیحات وافی بدم یکیش همین بحث ذکره. از وجود نازلین عزت رسول گرامی بهبه عزت می یقول الله تعالی خدا می گه ازاقان الغالب و علا الاشتغال بی بهبه اگه من بفهمم من بفهمم نه اینکه من الان نمیفهمم بعدا بفهمم من تو که در چنته منی یعنی بفهمم تو رو توی یک کوران قرار میدم توی یک آزمایش و بحران قرار میدم تا ببینم نتیجه رو خودت میفهمی چیه ازاکانل الغالب و علا عبدل بی اگر من به قلب نظر کردم و یافتم که این بنده من اشتغالش منم دل منم الا دل مشغولی ما خدایی چیه خدایی که بنده بین الله دیگه به من دروغ میگه منم بهت دروغ میگم نه تو میفهمی نه من میفهم. دیگه به خدا که دیگه نمیشه دروغ گفت به خدا که دیگه نمیشه دل مشغولی ما دنیاست حالا آجا زودتر تموم کنه بریم که تلویزیون چون میگه یا مثلا بریم درم دل خدا باید باشه از رسول گرانی خدا می اگه من ببینم دل مشغولی بنده من منم اصلا همه جا دنبال منه جعلت و نعیمه نعمت هام رو و لذته و لذائزش رو قرار میدم فی ذکری در یاد من بهش اجازه میدم یاد من باشه برای دل مشغولیش من باشه فا ازا و نعیمه و لذته و فی ذکری بنده ایم که نعمت و لذتش یاد من باشه خب عشق انیم. عاشق من میشه و عشق توه خب منم عاشقش بشم به یک کار به جایی ما میشیم معشوق خدا بیشه آشق خدا بیشه آشق فعضا عشقنی و عشقتوهو وقتی اون عاشق من شد منم آشق شدم پرده ها رو میزنم کنار رفعت الهجافی ما بین و بینه دیگه هیچ هجابی بین من و اون نیست میزنم کنار همه رو و سر تو معال من بین عینای همه معارفو جلو چشش میذارم لا یسهو ضا ص یه جوری جلو چش که هیچ وقت فراموش داکنمر مردم فرام. بعد بفرماید به این که, ای که کلام مهم کلام را انبیا بخ... این آدم ها پیغمبر نیستن ولی سخنشون سخن انبیاست کلامشون ارزش پیدا میکنن به یاد من باشه یه دل مشغولیم خدا باشه بعد لذت اصلا عوض میشه در کتاب شریف مصباح شریع حضرت صادق عیسی را میفرماید بین که این العبد اذا زکر الله تعالى به تعظیم خالصا ارتفع کل هجاب بینه و بین الله من قبل زال اگر بنده خداوند را یاد کند اون هم به عظمت على عظمت الله، اون هم از روی خلوص نه از روی بازیگری ارتفع کلو هجاب بینه و بین الله من قبل ظاله خدا همه هجاب ها را از بین و الله اکبر در ملکوته نماز نمازش نماز عادی نیست در ملکوت ولی و ازاغف عن ذکر الله و اگر قافل شد کیف تراه و بعد ذالکه موقوفا محجوبا بعد غصا و عزدم منظور فارغ نور العظیم و وقتی هم که قافل شد چگونه او را پس از آن میبینید در حالی که جا زده در حجوب سنگ دل شده و از هنگام جدایی از نور خدا در تاریکی به سنگ قافل از خدا در تاریکیه ولو ست و چشم داشته باشه ولو هزاران هزار لامپ داشته باشه مشغول به خدا در نور حضرت حقه ولو بینایی نداشته باشه ولو در حبس باشد، باید به اینجا رسیم یکیش ذکره دومین رو که بیان میکنن صلات نماز قال رسول الله از من شرائع دین حضرت رسول گرامی نماز از آینهای دین است و فیها مرزات و رب و در نماز رضایت و خشنودی حضرت حق است و منهاج الانبیا و اون روش پیامبران است ول حب الملائکه برای نمازگزاران محبت فرشتگان و هدن و ایمان هدایت و ایمان و نور المعرفه نور شناخت وجود داره پس شناخت چه راهی میده؟ بله؟ بله؟ از راه نماز خب این هر اون نمازهای واجبه که قطعا نیست یک حالا میفهمی که امیر علیه السلام اگر شبان روز هزار رکت نماز بخوند بخاطر همین هم هست اون معرفت رو داره بیش برفش تو شبان روز صد رکت خونده حالا هزار رکت نمیتونی بخونی صد رکت خوندی ها صد رکت نمیتونی بخونه غیر از اون در رکت, رکت خوندی نه نه نمیگه بسید ما امیر المومنی نمیشه چرا باید بشید چرا باید بشید باز از وجود رسول گرامی سرات و مرزات و رب خوشنودی خداست نماز و شب و حب الملائکه عاشقی ملائکه رو دارد سنت و لعنبیا روش پیانبرانست و نور المعرفه شناخته ن شد. شد چند عامل دو عامل سوم که ازم منو تو هوش لذت نداریم ترسم داریم روزه و گروستنگی البته بعضی رو می‌شن که گروستنگی قهری دارن یعنی به خاطر مسائلی گروست هستند. ولی نه کسی که اصلا گرOSTگی رو انتخاب بکنه نه به خاطر رژیم یا مثلا به خاطر پرهیز اینا نه روبند خدا ان الله خداوند صحت سلامت به همشون بکنه. ولی گرOSTگی رو انتخاب بکنه اللهم علیه السلام حضرت علیه السلام بودن فی ذکر حدیث معراج نبی در اون یادی که از حدیث معراج داشتند معراج پیغمبر فرمایش حضرت رسول بود که پیغمبر از خدا پرسید یا به ما را رسول چه چیزی رو در پی داره گرستگی انتخابی ها فقر نه نداری نه اینکه من گرستگی رو انتخاب بکنم ولو ندارم حالا گفتش که تی چا بود هی hey بگفت کمک کمک یه نفره بقیلی ساعت گفت چی بگفت کمک کمک کم کنم کم بیا بیانم حالا سب کده بیانم سب نکنم باشی کنم من تی چا هم دیگه با کنم دیگه نه قهری نه از روی رضای خدا اگر هم وضع مالیش به هم ریخته است همون رو که بالاخره قوت لایمو رو که دره میخوره تلاش بکند که مدیریتش بکنه که بخشش به جومون جر بشه حالا نرید آقا اصلا کل مملکت دوچار فقر قهری و اینا من ندارم من به یک بحث انتخابشون اساسا بر اساس تقسیمات قهری که سیزو بهش چیزی نمیدن هیچ چی به کسانه که قهران به دست نمیدن کسی که از روی اراده و انتخاب گرستگی رو انتخاب بکنه. از پیغمبر پیغمبر از, از حضرت حق هق کرد یارب به ما میراس جو جوب چه چیزی رو در پیداره اگه من گرستگی تحمل بکنم اما بعد میبینی که او وقت وقتی حضرت آقا توی شعب عبی طالب هستن شکم مبارک رو میبندن و الله میتونه خیلی کارا دیگه انجام میده. اگه برای عیسی از بالا ماعده میاد برای خاتم انبیاء که همه چی میاد ولی وقتی نمیخواد یه چیز دیگه است این عظمت پیغمبر ماست که قابل قیاس با هیچ پیغمبر دیگه نیست ولی به شکم مبارک سنگ میبنده در شعب قرار رو میگیره گرستگی رو تحمل میکنه انتقاب میکنه خب حالا خدای من این گراستگی رو تعمل کردم چیه موزدشی موزدشی موزدش ببین چیه قال اله حکمه حکمت بهت میدین و حفظ قلب قلبت ثابت میکنیم ثابت قدم قرارت میدین و تقرر تو رو نزدیک خودمون قرار میدین تا کجا نزدیک قاب بقی حسین او این مالا اون تو اونجاست و الا خدا بکید اگه پیغمبر ما گفت خدا یا یه چیزی از بالا بفرست خدا نمیفرستا میشه و تگر رو نزدیکی چند تا سه شد ثابت بودن قدم حکمت در تعریف حکمت آیان میگن حکمت است که انسان رو به سعادت میکشونه سعادت معقولی است که وقتی بهش رسیدی اظهار ندامت نمی‌کنی مثلا شما چهل سالت میشه میگی من تا 20 سالگی عللی تللی میکردم. یعنی تا 20 سالگی زندگی تو راضی نیستی بنابراین این تا 20 سالگی سعادتمند نزیسته ای. حالا اگه درست باشی واژگی گفتم زندگی نکردی تا 20 سالگی نه من راضیم درست زندگی کردم این صادق من درست زندگی کردم ولی حزن دائم جو یکی از پیامداش حزن دائم افسردگی نیست حوزه و خفت المعونه آدم خفیف المعونه میشه زندگی رو آسون میگیره خفت المعونه بین الناس شد شد نشد خودشو به درسه نمیدازه و قول الحق و حقه و لا یوالی آشب یسرن ام به عصرن فر نمی کنه تایی چا باشه یا خلیفه باشه اردوش عبدالله این سمره جوعه قم قم اگر کردم که افسردگی نیست غم عالم ملکوت تو داره غم مردم تو چه آدم نمیشه ان الله الا از بزرغتون که حضرت رسول گرامی وقتی مردم میزدنش نفری نکرد اللهم مدعاول قم نذای نه نمیدونم من چی براش غم مردم رو داشت از همه مهمتر خود رو داشته باش چرا غم خود رو نداری چه شادی همونی که میخوان هستی یا نه؟ خواهده همونی که میخوان نیستی خب با قم داشته باشیم دیگه سرمون از پایین دیگه نه؟ توبه کردیم گناه کردیم توبه کردیم از بین رفته اون داستان اون جوان رو گفتم نیمخوا حالا دیگه خیلی وارد این محصای شما رو بگذاریم از این ها اون جوانو به امام صادق خدا اگر گناه کرده باشیم بیا از سلال خدا منشو هر برد چرا نم آقا را راستی راستی میبخشه از آره عزیزم میبخشه میبخشه آقا را راستی راستی میبخشه بله میبخشه گیرم ببخشه شرمنده هیشو چکار کنم یه بار شرمنده خدا شدیم که حق تو عدا نگردی خب باید حوز داشته باشه دیگه حوض مرتبه شکر دیگه بعد فرمود سووممو یور سال حکمه و حکمت ی تور معرفه روزه حکمت میاره و حکمت معرفت میاره و معرفه تور سگردیم و معرفتم که شما رو بشی میرسید یعنی میرسه حالا اگه بخواد به مراتب ایمان وارد بید با دیدمنی داشته باشید برای که یقین داشته باشی، باد معرفت داشته باشی. برای که معرفت داشته باشی، با چی داشته باشی؟ حکمت داشته باشی. ها؟ برای که حکمت داشته باشی؟ با چی کار بکنی؟ روزه بگیری. تا این پروسه و فرآیند و پشت سر نظری به یقین نمیرسی از شرنگ میخوای وارد شی. ها خدا دل راهشو میگه. البته دوملیش دیگه است. دوملی بازی است. نه من اینجوری میام نه من میخوام جوری به یقین برسوم. میگه اما این خیلی بعد دیگه ها جو رو اونجا میده بعد دانشگاه های ما یکی از مثلا فرض خواهی موزلاتش بوفه شون ماشه سرف سرفیس شون بیرون دانشگاه هم از آب سرفیس شما کرده هر کاری کرده هر کرده البته اونا هم حق ندارم که هر غذابی رو داره خدا بود ولی خب علم و فلجو این تو گرستگیست این شد سه تا, تا. چهار رو اگه بخوای به معرفت خدا از آیات الارویس بیمت آشر خدا بش محبت به خدا داشته باشی این جمعه هفتش ده اتا روایت یاد داشت که اصلا بریم توش که دیگه بیرون اومدنش سخت باز عزت امیر علیه السلام رسول کرامی المحبت و اساس المعرفه محبت ورزیدن به خدا اصل و ریشه شناخت خداست خدا به پیغمبری در حدیث معراج بگه امیر علیه السلام بزید. اما اما برای زندگی که باقیه دو تا حیات داریم دیگه تو خونه های آپارتمانی هم دو تا حیات داریم حیات الفانیه که دنیاست و حیات الباقیه که آخرت حالا قبل از این مطلب حیات الفانیه رو گفته رجب حیات الباقیه خدا دارست و هم میکنه بسه آخرتت اما زندگی آخرت فهیلتی یع عمله به لنفسه این همون نیست آدم برای خودش کار میکنه اینجا اگر من کاری کردم بخواه مردم میگن باری کلا ولی برای آخرت برای خودم برم کار میکنم برای خودش کار میکنه حتی تهون علیه دنیا تا برش آسان بشود دنیا و تسغرفی آینه دنیا در نظرش کوچیک بیاد خدا با همه عظمت این دنیا میفهمن مطاعت دنیا چی؟ خب تو چرا این قلیل نمیدونی؟ تو چرا این قلیل نمیدونی؟ با سه متر مربعش آدم میکشی؟ زیراب زنی میکنی؟ دو روز بیشتر پشت صندلی باشه؟ و تا از آخر و آخرت نظرش بزرگ است ما اصلا آخرت تو زندگیمون نیست اما از آخرت نهایت مرگ رو میدونیم میمیدیم بعدش چی میشه واقعا یه 24 ساعت راجعه بعدش بشینیم فکر کنیم اگه راست باشه که راسته خب من چیکا ببکنم فا اضافه اگر این برای خدا کار کرد دنیا تو چشش کوچیک شد حالا به من چی کار میکنم من چی کار میکنم فَإِزَافَ عَلَزَالِكَ اَسْكَنْتُ و فی حب بن محبتم رو میریزم تو قلبش حتی اجعل غَلْبَهُ لی فراغه و او و همهو و او من النعمة التی به بها علی اهل محبتی من خلقی من همه چیزمو به او میدم وقتی محبتمو در قلبش ریختم قلبشو تسخیر میکنم اینا که روزای اول نامزد میشن قلب تسخیر دیگه تو اداره از ولی داره قلب میکشه بعد یه تیرم وسطش رد میشه و دو تا قتل خونه ها چه قلب در تسخیره تسخیر عروس خانوم چقدر تو زندگیمون قلبمون تسخیر خدا بوده حالا قرار داره ساعت چار بعد از او بره با این ترافیک میره ساعت دو یه مرخصی بگیره که بره یه دوشم بگیره لباس خوشگلرم ببوشه بره برای خدا همشه کاری کردیم نکردیم نکردیم نکردیم آدمی که تلاش بکنه دنیا برش آسون بشه. آدمی که تلاش بکنه دنیا در نظرش کوچیک بشه. آدمی که یه همچی اتفاقی براش بیفته محبتو میدهدم تو قلبش. وقتی محبتم ریختم تو قلبش قلبش در تسخیر منه. هر جا باشه مال من، کبوتر جلده. مال خودم میشه. اشتغالش، همش گفتارش از منه. حرفم هم که بغاد بزنه. میگه دلار شد چقدر یه خدا کجای زندگیمه از نعمت من صحبت میکنه. اونم نعممت هایی که به اهل محبت دادم و هههایی نقل بهی و سمعهی من گوش شنوایش را و چشم بینایش را باز میکنم. حتی یسمع بغرب حی و ينظر بغرب حی الى جلالی و عظمتي تو منو ببینه تو محبت مناصب میشه اگه بخوای به معرفت خدا برسی باید عاشق خدا بشی اگه بخوای عاشق خدا بشی باید دنیا رو ول کنی دنیا و مظاهر دنیا رو باید ول کرد برادرها خواهرها اگه ول نکنیم نمیرسیم آسمون که هیچی آسمون هفتم میاد ما فهمی خدای است این آسمون که الان میبیدیمش این که جای خود اون آسمون هفته هم که نمیدونیم کجا هست و نمیبیدیمش اون اگر جلوی ما حاضر کنم باور نمی کنیم چون ما محبت به خدا نداریم المحبت و الاشخ و و یاسم کور و کر میکنه ما عاشق نشدیم که کور و کر خدا بشیم اگه عاشق شده بودیم کورو کر خدا بودیم که به خدا نمیگفتیم چرا این کار کردی چرا کم کردی چرا دیر اومدید چرا چرا اون داره چرا من نه؟ اگه ما عاشق خدا بودیم که این حرفانه بود که خب نیست اگه عشق خدا نیست چون عشق دنیا هست ما همه ملاکامون و اون تنا اون متری که داریم و هاشبیسنجیم متر دنیاست. تو دنیا کی از همه محبوب تره؟ اونی که پولار تره اونی که قدرتمند تره اونی که ماکیاویلی میگه که اونی که نیچه میگه که محمد و آل چیز دیگری میفرمویا آقای من ازت صادق و الله لهاهل محبته خداوند هبه میکنه میبخشه به کسانه که اهل محبتش هستن اهل محبت شدن هم با پاروی دنیا وزشتن حاصل میشه دنیا و مظاهر دنیا و علا معرفت یک معرفت خوب ابر معرفت برای اهل محبت و وضع عنهم ثقل العمل حقیقت ما هم اهله اهله توان شناخت خودشو به دوستدارانش میمخشه سنگینی عمل به حقیقت آن را اهلش هستن از آنان برمیداره وقتی آدم اهل محبت بشه دیگه از عمل ترس نداره سنگیدش نیست وقتی اون آخهش راحت شدیم مالمی که تموم شد خدا رو شک شرش گذشت فرق ما با زینال آبیدین علیه السلام دارم دیگه ما وقتی میبین شب آخره گریه میکنم یا چرا این از دست میدی؟ بعد روز عید روزه نمیگیره چون خدا حرام کرده با 6 روز بعد روزه میگیره 6 روز یواش یواش جدا میشه یواش یواش از خدا جدا میشه برایش سخت حالا ما میرویم هم دارا تو یک تو شیش ماهی دومستان روزا کتا تره خونه که آقای در روز اول آخر با هم مشکل پیدا میکنم به همدلالله بیه بی سه افش و یه چارپنی روزم که خودمون نیستیم و خب نگیر نگیر اقید سخته نگیر این که دیگه هستن هیچی چنده شد؟ چارتا پنجمه شیه انقطاع بسوی خدا به انقطاع بسوی خدا الهی حضرت رسول اکرم الهی من زلزی انقطاع الک فرم تسلحو کیه که منقطع سوی تو نشد و نرسی از همه بگذر تا به خدا برسی از همه بگذر تا به خدا برسی وقت جمع نقاط و محبت اینه که از همه عاشقانه بگذر نه اجباری همه بگذرین از امیر در شعبان الهی حبلی کمال اله نقاط اله باب کمال یعنی بالاترین نهایت گسستن از ماسب الله رو من بده بالاترین مرتبه گسستن از ماسب الله رو من بده الهی حب لي کمال الانقضاء الک و انر ابصار قلوبنا بضیاء النظر ها الی تا تخر غاب ساار و النور حجر و نور موقع به من دادی تازه بینش من فعالیت میکنه و من حجاب ها رو میذارم کجا؟؟ ا ها رو می بینم ف تصل ال معدلل عظمه و تاثیر ارواقب به ع قد من به تو و اون مقام قدوسی تو میرسم در اون قداست و حاله عظمت تو بعد گوینده میشم که لم عباد لم عره مطبط دم بگذره بود بگذره همین امروز اگه قصد که قصد کردی که خدایا من از دنیا میگذرم از اینجا رفت بیرون تصادف شد پاشه شکست از جفتش قطع شد اگه خدای من بخواستم بگذرم تو چرا گرفتی خب بیزه دیگه چرا تو دو قراشو بی پیش من کمه آلاله نبتا اگه از اون دوست داری اگه اهلش نیستی بی خودی هم لاف نزن وقتی هم که اهلش نیستی به دست هم دیگه طبیعی دیگه عوض داره گله نداره دیگه وقتی حاضر نیستی از همشی بیزاری خب هم به خدا برسی طبیعیه و مورد ششم ولایت اهل بیت سلام الله علیه منشمعی نقش احل بیت نقش هدایتگریست که ما را برساند به سوق حضرت حق هر چه قلم که ما از امام رضا فقط دنیا میخوایم آقای عروس خوب، آقای شوهر خوب، آقای زن خوب، آقای بچه خوب آقا پچکامونه آقا دنیامونه آقا ماشینه مونه آقا یا منم برای یه زیدیه رو یشدن تو یه هم هم میخوام خب باشه قرر نکنم ما اونم بیدیم بید بید. چون آقا این آودت و کمل احسان سجیگت و کمول کرم ولی خب ناراحت میشن دیگه میگن ما رو برای چی خرک کرده اینا هم و چی میخوام سومولتیم رو که دیگه نمیده از مثلا فرض کنید دارو خانه میگه دیگه اصلا کسی کسی کسی کنید سومولتیم اون عطاریه میدی دارو خانه اونم مثلا فرض کنید تکنوسقهی نمیده آه سومولتیم داری سیار دو زخش بخواه حساس سومولتیم هم چیز خوبیه چون نعمت خدا هست و پس این آقا گشتن که من بر پیش خودم میشه یه پولی به ما بدی قال رسول الله نحن الوسیده الله وسیده به سوی خدا ما الوسطه الى رزوان الله رسیدن به سوی رزوان خدا به واسطه ماست ولنا على اسمت و الخلافت و ما دارای مقام اسمت حکومت و هدایتگری است و فینن نبوه ولولایه ول امامه در ما هم نبوت هست هم سرپرستی هست هم امامت هم نسبت به ما سبق هم نسبت به ما لحق هر دو هم گذشتگان منوت به ما هستند هم هم آیندگان وابسته به ما هستند. مهور اولین و آخرین ما هستیم ما وسطی ما ندر اولین هستیم ما در آخرین کانو امتن وسطا ما وسطیم. ما یه دستمون گذشته ها رو گرفته یه دستمون آینده ها ما اینجاییم ورهنو معدنو لحکمه باب الرحمه شجرتو لعصمه نهنو کلمت و تقوا و المسل الاعلى و الحجه العظمى و العروه الوثقى الی من تمسک بها نجا ما مسل اعلی خدای خدا لیست که مستهی شه مس نداره ولی ولی هم مسل اعلی مسل داره نمونه داره مسل اعلی الای ماست غلط میگم چون واژه ندارم خدا نیستین این درست ولی خدا گونه است این غلطه اما دیگه واجه بلد دستم جاش بگم خداگونه هستیم یعنی چی؟ یعنی ما مثل آهنی نگونیم که در مجاورت آهن با خصوصیت آهن روبا رو میگیره جدا هم که بشیم هم خصوصیت مسلال اعلا ما امکار میکنیم ما خصوصیت خدایی داریم امیر علیه السلام میفرماد میخواید به خدا نزدیک بشید تقربوا الى الله به توحیده و طاعت من امرکم ان او نزدیک به سوی خدا به مراتب توحیدش بشید و اطاعت کنید کسانی رو که خدا چیکار کرده اطاعتشون رو واجب دانسته یعنی اگه از اینا اطاعت بکنی به اون مراتب توحید برسید تم تمسکو به اسم کوافر خب با اهل کفر به شس و برخواست و من خدا میگم نشتو بشین این اسم کوافر بخش از آیست دیگه من میگم با کافران شس و برخواست نشتو بشین خب شما خب براید دوشت ما میگی چرا بدنا چناص رقم نمیرسی، ما خب میگم نمیرسی دیگه. مشکل اینه که ما میخوایم نسخه های خدا رو بریم ببینیم. خدا داره نسخه هاش 1400 سال پیش به طور عالی ترین شک پیچیده. ما نمیتونیم دیگه در مقابل حرف خدا حرف بزنیم. علی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الي> بن موسی الرضا من سرحه ان یان الله به غیر حجاب بدون پرده و پوشش اگر کسی شادمان می شود که خدا را ببیند و یان زورا الله به بغیر حجاب و اگر شادمان می شود که خدا او را ببیند فلیتوله آل محمد ولیتبر من عدوه ولایت پیامبر و آل پیامبر باعث می شود که خدا بدون هجاب ببینیش و بدون هجاب و معنی تو را می بیند ولیعتم به امام المؤمنین منهم اگه بخوای ولایت ولایتش داری اعتمام داشته باشه معموم باشه ما معموم هستیم یا نیستیم ما خودمونم نمیدونم چه هست گیر کردن فانه فَا اذا كان يوم القيامه نصرت عليه بغير حجاب و نظرا الى الله بغير حجاب کسی امامت امام معصوم علی السلام داشته باشه ای خدا مهربون بیپرده بی پرده خدا رو میبینه خدا هم نگاه میکنه اصلا دیگه به بش... کس دیگه نگاه نمیکنه آخرین چیزی که به عنوان هفتمین ارز بازورتون عامل به عنوان که معرفت به سوی خدا پیدا بکنیم بعد از ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بعد از محبت خدا بعد از انقطاع به خدا انقطاع گسستن از غیر است و فقط دیدن خدا است جمعش با محبت این است که عاشقانه این کارو بکنی آاشقانه این کارو بکنی و کسی عاشق خدا باشه و از دنیا ببره چقدر عالی میشه. حالا هفتونش میگه آقا از خود خدا کمک بگیر از خود خدا کمک بگیر برای رسیدن به خدا راهی جز خود خدا نیست. راهی جز خود خدا نیست آقای من حضرت سید الشهدا در بیان مبارکشون در دعای عرفه الهی ترددی فل آثار یو با بعد المزار چیه که این حرفو بزنه خدایا نگاه من در آثار تو من از تو دور میکنه من از تو دور میکنه چون خیلی سخته ها ببینید چرا من از تو دور میکنه خدا خالق روز و شبه خدا خالق زمانه تو میخوای از زمان برسی به خدا خو خدا غیر زمانیه خدا زمان بردار نیه. خدا خالق مکانه کون و مکان رو او خلق کرده تو از مکان میخوای برسی به خدا؟ خدا غیر مکانه بیا آقا من در نگاه کردن در آثار از تو دور بشم این چه معرفتیه این چه معرفتیه یوجب با بعد المزار فجمعانی علیه که به خدمت توسلونی خدا منو یه خدمتی بکن که منو به تو برسونه کیفه یستدل و بما به ماهو و فی وجودهی مفتقران علق عجب آخه چجوری میشه دلالت کننده بر تو موجودی باشه که به تو محتاجه بابا ما به خدا محتاجن اگر نازی کند لیری فروری ریزند قالب ها. موجودی که استقلال ندارد میخواهد دلالت بر خدا بکنه عزت. فهم نمیفهمم. آیا خون و لغیر من از ظهور مالجسال که حتی یکونه هو المظهر ل؟ یعنی اونای دیگه انقدر بدیهیان. که بیخوان بر تو دلالت بکنن یعنی انقدر ظهور داره که میخواد تو رو روشن بکنه او روشنیش از توست عجب احولیه یعنی دو بینه درست نمیدونه با خدا رو ببینی برسی بین. چرا چرا خدا خالقشه ایا کونه لغیر کمن از ظهور یعنی غیر از تو اینقدر ظاهر و بین هستن ما لیس لك تا یکونه و المس که تو اون حد از ظهور نداری که اینا میخوان دلانت بر تو بکنن مت ربت هت تهتاج الی دلیل یدل خودش جمله شو میگه تمام خلاص چه قایب بودی که اصلا دلیل بخوان و به که از تدل, از تدل و علنگ فهدنی به نور من به واسطه دو دلیل بر تو میارم خودت دلیل بر خودت هستی من به واسطه نور تو به تو هدایت میشم خیلی خوشگله این عبارت خیلی خوش وقت که فجرمه انی الگ که به خدمت منو مشغول یه کاری کن که به تو برسم چربلا رو براش گذاشت یعنی حرفی رو که زد پاش آخرم که از اسب افتاد مح رو زد الهی رزن به قضا تسلیم من لبرک لا معبود سوا حرفی رو که زده پاش وای حرفی رو که میزنه پاش وای میسی، ولی راه رو همین میگویم و الله برادران و هر هرچه دلیل بر خدا از عرفان بیاوریم و از قرآن بیاوریم و از فلسفه بیاوریم مادام که این هفت انصر در ما نباشه ما را به خدا نمی نساند. این عوامل باید در ما وجود داشته باشه بعد یه موانعی هم هست اون موانع رو هم باید برطرفش بکنیم تا وقتی ما دیگه مثلا فرض کنید به دریا بینگرم دریا تو بینم حالا تو بینمون دیگه تو میخونی حالا من فقط مضمون رو گفته باشم آه. اگه یه هفته عامل درست باشه دریارم که میگام میکنی خالق رو میبینی ولی ما آدمی که این هفت انصر در انسان تجلی پیدا بکنه از انسان نیاز داره به یک سلوک عملی نیاز داره به یک سلوک عملی انسان نیاز داره تا از حیوان بل فعل بشه انسان اکتصابی از فعلیت حیوانی خارج بشه باشه و یه انسان بشه آنم آرزوست یک انسان اکتصابی در سرک به دست میاد حالا نشد که اون موانع رو بگم و بعد خواستم که خب نشانه های خدا رو بگم فکر کردم که تا صبح وقت داریم ولی تا صبح که البته وقت داریم ولی حالشو دیگه نداریم شما باید به شما اما دل به خدا پیدا با دل به خدا پیدا با یعنی در بحث تفسیر من از خدا میگم در بحث اعتقادات من از خدا میگم از حالا باید دنبال دوشنبه باشیم چه دوشنبه نمیاد دل مشغولیه به خدا یعنی تقویم دو روز در هفته داشته نه اینکه چون متصل به درس منه و هر درسی که در واقع خدا توشه بقیهش من که چرا نمیاد اینو بهش بیان دل مشغولی نکنه دوشم بیان و من نتونم بیام. نه درس فلانی قرآن محضر قرآن است. محضر امام صادق است نه که فلان فلانی که کسی نیست محضر امام صادقه نکنه من توفیق ازم بگیرن این یه خوفی در آدم ایجاد میکنه این خوف خوف مطلوبه اولین گام ترسه نکنه من از نعمت محروب کنم نکنه این نعمت من در تعارض با امور دیگه قرار بگیره و من اون امور دیگه رو انتخاب بکنم و توجیهش بکنم مسافرت باید برم چه باید برم چه باید دل مشغولی من باید خدا بشه مشغول بشم به خدا الحمدلله رکبا